مریم چشمات رو وا کن زنی بالا کن درمات خوشی چد حواسفید وقت اون رسید به سارو وای نازنی مریم جون مریم چشمات رو وا منو صدا بشین روونه naspole, chule, be shule, be radu uzor. Vojna خواب، بیداری، بیخوابی، کمخوابی، پرخوابی، رویا، کابوس، اینزنییا، اختلال خواب و شببیداری ها. اینها کلید هستند برای خواب عزیز. اصولاً آدمی زاده اینطور است که قدر چیزهایی را نمی داند که بهشان عادت کرده است. مثلا عادت کرده است که نفس بکشد یا عادت کرده است که پلک بزند یا مثلا به خوبی کردن مادرش عادت کرده است.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 اصلا از همان اونفوان کودکی هم از نوشتن خاطرات بیزار. یادتان می آید به همان می که خاطراتتان را بنویسید تا نوشتنتان قوی شود. اصلا با یک گارد فولادی می جلوی آن کسی که این نظریه را داد که اگر خاطره بنویسی نوشتنت بهتر می شود. اصلا حالا بیا یک سری مطالب روزانه را بنویسی و بعضا داغدلت را هم تازه تر کنید. که حالا که چه مثلا؟ ولی الان میخواهم از خاطرات اوریجینال شبیداری شب هایم برایتان پرده برداری کنم و بگویم خاطرات روزانه چنان توفیر اساسی با خاطرات شبیداری شب ها ندارن. ولی خب دیگر چه کنیم؟ که ما باید قرصهای هایمان را به این هایی که به جای خوابیدن بیدارشان نگه داشتیم بدهیم دیگر دین خود را ادا کنیم به این شبهایی که ماهیت اصلیشان را با یک دهنکجی بسیار فراخ زیر سوال بردیم.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 انسانها در طول تاریخ بیمنطق بودند چرا وقتی بچه های توی هند زندگی میکنن؟ مردم غذاشونو میریزن دور؟ چرا وقتی به اکسیژن نیاز هست درختار رو قطع میکنن؟ و اینکه چرا جدول زمان بندی ها رو درست کردن؟ وقتی هیچ کدومشون سر وقت نمیان؟ مکس با دانشمند مورد علاقش هم عقیده بود که تنها دو چیز تمومی نداره. کائنات و حماقت انسان؟ شبی های من را یاد ترابیس بیکل اندازد جوانی که به خاطر بیخوابی مزمنش پناه برده بود به تاکسی راندن شبانه شبی های من را بدجور به یاد ترابیس بیکل اندازد مردی که در طول این شبی ها چندین دوره را می گذراند و در مواجهه با انسان ها تحولات فراوانی می یابد او بی تفاوتی مزمن را تجربه می کند او تبدیل به یک آدم افراطی می شود و در آخر او می شود یک نجات بخش واقعی ولی بیخواب شبیداری‌هایم مرا بی‌اندازه یاد تراوییس بی می می‌اندازد. من نیز سالها بی‌خواب بودم. آن هم از نوع مزمنش. من هم در تمام این سالها به تاکسی رانی های فراوانی پناه بردم و افراد بسیاری سوار تاکسی شبانه من شدند و البته در تمام این ها فهمیدم حتی اگر نجات بخش باشم هم یک رانند تاکسی بیش نیستم. و آنها هم مسافر هستند و به مسافر ها نباید دل بست بسیار خشبگینم از اینکه که سال هاست نخوابیدم و کاش میخوابیدم و خواب خودم را میدیدم به قول دکتر تلایی خشب ها نوعی واکنشند به دردها، ها شبیداری های مرا بد جوری یاد تراوی سپیکر میاندازد نشستم جلو آینه و به خودم میگویم داری با من حرف میزنی؟ تو داری با من حرف میزنی؟ حالا ما با هم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 نخیر، میخواهم از چیزهای کوچک و بزن معمولی حرف بزنم که بسیار مهمتر از موارد فوق است. همین چیزهای معمولی که زیبایی های این شبیداری ها را می سازند. زیبایی هایی که کارکرد دوگانه ای دارند. مثل قوغنوز که در شاهنامه هم خوبه است و هم بد. اینها هم میتوانند آدمی را به ورته غم و اندوهها عش بکشانند و هم میتوانند او را شاد و قوی و رقصارود کنند. آدمی در این شببیداری ها هی یاد گذشتهش میافتد یا آدم هایی که آمدن رو رفتن. هیچ چیز زیادش میآید همینجاست که یکو می توانت برود در لاک غمبادکی و اشکالوداش و با دلپیچه ای عجیب ناشی از قورت دادن اشک و آب دماخایش از خواب بپرد و هم میتواند به خودش و دیگران یادآوری کند که دوستی ها و رفاقت ها تاریخ مصرف دارند و باید زندگیش را مبتنی بر بی‌انتظاری بسازد و بعضا حکم ابطال بزند بر مانیفست های ریز و اش که مباد و در کاسه لب گل سرخ جهاز سلگوم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 قوی می شود در دلش عشق نمیریزد و غم نمیخورد. این همان زیبایی بزن کوچکی بود که شب بیداری ها به آدم می داد.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 With haunting nothing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 گاهی هم یک چای و یا یک بهمن شب من را به زیافت وسطما شدنی تبدیل می شب یه این پیرزن پیر مرد های که مینشینن دم خانه هاشان نگاه میکنند به آدم. آدم ها رد می شوند و من نگاهشان میکن بعضی ها فقط صدای سیستم صوتی ماشینشان میآید که گاهی من خواننده را می شناسم و شعر بردم و باقی شعر را تا جایی که بشود برای خودم تکرار میکنم یا حتی اگر در گوشی باشد پخشش میکنم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 چند پیش معاجرت کردن به لننده پیش پسر و عروسش آنها هم آدم های مهربانی بودن هر شب کلی دور می زدن تا از جوری خانه ما رد شود و من رو ببینن چند وقتی که سخت مریض بودم یک روز بعد ظوری آمدن در خانه و از مادرم جویه حالم شدن وقتی فهمیدن که مریضم هر چند روز یک بار زنگ زدن و حالم را از مادرم پرسیده. خیلی های دیگر هم بودن کسانی که دلشون گرم بود به شب که قرار است بیایند شب گردیم از همیان گرد آن حتی یک نفر هم نند فقط من ماندم و این در خانه و چای و بهمن و شبگردهای جدید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 تا نماز مادرم را از لای جا نمازش بر می دارم، سرم می کنم و آرام شب بند در غربی خانه را باز می کنم اتاقم همینجا بود نگاه می کنم به جبه تقسیم اصلی خانه و یاد شب هایی که تا صبح با آن سیم بلند 24 متری که دزدکی از بالای سر او بر می داشتم و با آن کارت های آفتاب رنگی به نزمی آمدن می افتن. شاید به خاطر همه شبی داری ها بود که حالا یهدان شبهایی میفتم که بی‌وقفه می نوشتم و تا شب بعد از شغل نظراتی را داشتم که برایم حکم انرژیزار رو داشتم. شاید به خاطر همون شب بیداری ها بود که حالا بیخواب شدم یادم نیست چند سال پیشتر از این بود. ولی به گمانم باز هم شب بود با آن رادیویی قدیمی و سیاه تا صبح موش ممنوعه را رو و با سیخ کباب و پنجره و کمی آدام ساعصاب مانده برایش تغییر کننده شاید به خاطر همون شب بود که حالا بیخاب شده. یاد شبهای با فن سی پیو افتادم و آن بهمن زمستانی و سرد و دریچه کولر و شبانه های شاملوی جانم که کتابش را به چه مصیبتی خریدم از انتشارات صدرا که نمیدانم چه کسانی مغازش را با آتش کشیدم. شاید به خاطر همون شب بیداری ها بود که حالا بی خواب شدند یادش بخیر تا بهش به عشق سمت خانی زیر پتو با آن چرا قوه قدیمی قرمز و آلوز و هلوهای لبوفروش نارنج و آه سوزناکه. نه نکلاغ و حسنک کف درواز و ماهی سیاه شدن چه سفایی میکردم. شاید به خاطر همه ها بود که حالا خواب شدم. نمیدانم سهراب و سمتخانی بود یا اصیان فروغ که مرا را اینچنین عاشق ماهی شدن کرد. فقط این را میدانم که اسمم را دوست نداشتم و اینچنین بود که فتانا متوضد شد و ماهی کوچولو و از کنارش روش کرد که خواست به اقیانوس برود. ولی خودشم عاقبتش را نمی‌دانم شاید به خاطر همون شب بیداری‌ها بود که حالا بی خواب شدم حالا هم معلوم نیست چند سال دیگر باقیش تا شب بیداری‌هایم را که حاله شدند شب ها نوازش خواهم کرد اصلا شاید سالی در کار نباشد حرف من حرف ثانیه‌ای است که کاش می‌خوابیدم و خواب خودم را می‌دیدم چادر نماز و مادرم را اصلای جان نمازش برمی‌دارم سلام می‌کنم با آرام شب بند در قبی خانه را باز می‌کنم یکی از عادت قدیمی هم نگاه به خشک صبحدم. حالا نمیدانم چشمان من لوس شده است یه آفتاب این روز ها آفاد شاید به خاطر همون شبیداری شب ها بود که حالا بیخوابی عادتم شده است. شب به روی شیشه های تار می نشست آرام چون خاکستری تبدار باد نقش سایه ها را در حیات خانه هردم زیر و روم رو میکرد پیچ نیلوفر چو دردی موج میزد بر سر دیوار در میان کاج ها جادوگر محتاب با چراغ بیفروغش فروغش.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 تو این قسمت در کنار شعرهایی که از فروخ و سهراب براتون انتخاب کرده بودیم شعرهایی رو خوندیم از مهران علیزاده و سید مهدی بوسلی و البته آهنگهای جان مریم Endless Song از آرون، آی ویل سروایو از گلوریه گاینور و ویزهولدینگ ناسینگ از ویلیام مک‌داول رو با هم شنیدیم. شاد باشید و و تم